الحمد لله عرف العالمين از الله اللہ علیه سیدنا مسئلی اللہ و آله قیدین و خواهرین و نعصومین الله نعصود داریمت علیه ساله از صبح نقداری را جب سه عبارات مربون شیخ امساری بینابار یه دیدم دقیقه شو بخواهیم بکنیم خیلی نقطه خاصی نظاره اجماله همینطور که تا اونجایی که دیویز خوندیم داری راجع به منظور سه که چیه حد و حدود چیه نیمیدار راجع به حکامی که من اشبار میشه و میشه در میان کلمات از حوا شیخ اینا رو برده. بعد مرمون شیخ یه عبارتی رو از مرمون مسجدتی میارن مسجدتی روزه 8-9 و ایشون عبارات مجلسی بودیاند و یه توضیحاتی راجبی این مطلب مرحوم استاد هم از داده ایشون هم ترقید همین کار انجام میدن ایشون هم موجد عبارات مرحوم مجلسی رو در بهار میانن فقط مناقشه ای که میکنن اینکه آیا مثلا این ای که ایشون بسته بس دوبوند، به چارون آیا صحر هست یا نه و ازا که باشه آیا حرا هست یا نه آیا خوب این بحث به ب آوردن مرحوم شیخ هم آوردن آقا آره کوه, موردن. آره کوه آره هم آوردن آقا کوهی یک تر باشه آنوان مراجعه کنه دیگه رو بکنی دیگه آره خسته نرکنی این باید مثلا هر از که مرحومه مجلسی و, و به بحث سه و به اصطداح منجم و با کافل و عراف و اینها تقریبا متق مجلسی اونجا این بحث رو برده بحث نجوم رو مجلسی مفصل رو برده و توضیحاتش ارز کرده در بحث نجوم مجلسی بیشتر نظرش به همون حرومت تعلوم علم نجومه و ارز کردن قدم از خواب ما هم او بو حرومت بودن تا زمان سلیمتها بود ایشون سرکر این کتاب بینیسه در اثباتی که علم نجوم حرام نیست و شواهد دارو چیه ولیزا در کتاب و سلم تابو سرقنه هفته مقدار زیادی از روایات منجمین آمده که قبلشون ذهب نشده این توضیحات رو من اونجا کردم و یک نوع تقاربی بین این سهر و منجم و کاهن و و این هم مرزبندی خیلی دقیق خیلی مشکله اولا خود مقاریم غرفی یک مشکل دارن که توضیح نیزی رو کرده. کردن سانیان این اینجور مطالب مثلا ممکن است که علم تلسماته مثلا تلسماته مردم ممکن ای صاحب. ای که این صاحبه یکی ممکنه علم جب باشه. نه این آنی یکی ممکنه تردرسی باشه. یعنی چون یک طرف این رسه افتاده به ذهنیت عوام و مردم و زنها و بچه ها و پیر زنها و پیر مردها و, و با سوال خیلی خرقانسی شده این مداره خرقانسی ماده این جهازه ارزای کردیم که مجموعه آیاتی که ما در سه داریم حدود شس آیات سه موشترقات سه سه آیاتش در مدینه است، و در, در مکه است. این مکه و مدینه هم از فراسی هم موجود مختلف کردیم و معلوم بشه که بحث سه می که در قران مطرح شده بیشتر علاوه بر فلسفه‌های سرد بیشتر موضوع بحثی بوده مثلا قصه رسول الله صاغره مثلا قصه موسی صاغره هارون با ایشان صاغره سهرام شاه را این بحث بحث اعوادی بوده نه بحث فکری خارجی بوده تا ان شاء الله داخل بحثا ضمن توضیح روشن پس این خلاصه بحث حالا ما بر که این بحث یک ترسامانی برسه اون ترسامان نهایی رو که برداروز میکنید آیات رو هم اجمالاً، تا جمعه اجمال ترسیم که بعد در تفاصیل بیشتری بیاد فعلا گفتیم بهدنی که باز روایات بشیم یا مدتی یک سری در روایات بشه تا ببینیم مطلب چطوره صاحب وسایل کار خوبیان کرده توی ابواب ما یکتر این رو عبرده چون ما از کردیم ایک جه بابی به با عنوان محرمات نداره آیون در این عباب ما افتصد و این چاپی که از مرگوم های ربانی پیش من هست جلد دوازده این چاپ جه این رو چنده یفته حالا یه در باب عباب مای افتصده باب بیست و چارش که سابقا خوندیم را جلد نجوم این گلاسشو خوندیم باب سال 25ش راجع به سهره. 25. وقت صبحا هم از کردیم که مرغومه صاحب وسایل خیلی در آنوایی ابوا دقیق هست از وانو تا. به این وجه آن مرد باور شدیم باور سحر و اجری. تحریم و اجر اون سه و استعمالی استعمال سه در عهد یعنی بخواد ببنده به این در مفتر و حکم اله حل خیلی عجیبه من ارز کردن یکی از نکاتی که در کتابش هست انابین ابواب رو که قرار میده همون فتوای خودشه لذا همون وجوب و حرمت و استحباب و کراهت تو عنوان حباب بیارد اما اگر در جایی گیر کرد تعبیر و حکم خیلی بینید سه چهار تا حکم اول آورد ها اون آخریش گیر داشت اون آخریش گیر داشت تعدیل کرد و حکمون حل و الله تعلیم سر حرام دو باب دوم اجر سر حرام استعمال سر در عقل حرام این سه سال اما حل مثلا کسی رو سر کردن کسی رو باز بکنه باز کردنش ایشون در باز کردنش گیر داره هم. نمیگن دیگه حرامه حلش رو حرام نکردن نوشتن و حکم الحل خیلی عجیب آقا رضوان و از عجالی اینه که ما در باقی حل سر یکی لوای از دارید. یکی هم با روی از, از ازاره همون باشه و سریع همون من حل حالا ترده سریع یا حل، اون سریع همون فرمان حل بکن اما حق بزن کن باز بکن اما ندارم. خیلی هرچی بود از ازالت با این که این دارید. حالا سمت سریع باشه نباشه بس دیگه نیست ظاهر سابستان قبول کرده این خیلی لطیفه این دقتهای سا و ساید در این جهر ولی سر ارز کردم مرحوم آقای بروژهلی محتقیز هستن این روش شلوس نیست یعنی عنوان بابو نباید بخم قرار بودیم اصلا بگیم بابو باب سه نه ما فتوا بدیم یکیش حرام و یکیش محلوم نیست نباید فتوا بودیم حرف آقای بروژهلی نظام این اجمی کرد اگر ما مکنیم مجموعه حدیثی بنیستیم در مجموعه حدیثی این بهتره این خیلی بهتره اما برنامه سابسایی تابع این تابعه کرده چه برای شما تجعبابل باشی؟ خبانی که یه روایت هم هست ظاهرش هم شون قبولش هم کردیم امامفان هم هل دولا ترقب امراه همه که باز بکنم اونه برند اون چه هست تابساییی باب و حکمه هم؟ سؤال این گیریشان منشع گیریشان چیه؟ درخت میکنه؟ خب من روزه دو خونم چون خودش یک توضیحی داده، اونجا معلوم میشه من شاید گریشان چیه قبل از هر بار روز خوندن گری نکنیم، از این روزش رو خونم جبرسم حدیث اولی رو که در اینجا بله یه نکته ای رو های به ربایی در هامش زده این نکته خوبیه. نمیدونم که اون نقطه چاپ جدی آمزه ایشون رویشه حدیث در فهرست هفتا حدیث از این فهرستی که ایشون میگه فهرست اون نیست سای و یک کتاب دیگری نوشته فهرست مانند بباره خلاصه کرده مضمون رویت باب مثلا نوشه باب 25، در روایات یکی داده بر میکنه و بعض روایاتش مهند کلام است. نتیجه نهاییه فیه کرده حدیث و یعنی منافات فیه منافع خدا. این فهنست که لحیب یک کتاب مستقلیست خود منون تا وساید میشه یکی از فوائد بسیار مهمی این فهنست عدد احالیسه شما ابتدان اگر وساید جروع خودم می بوده میتونم چند تاییشون چند تا حساب کرده یکی از راه همین هم و چند بار ظاهرمان این مطلب ارس کرد این تنویز نیست، دیگه در این شاپه که هایی در آرولویت این کار انجام داده، این فهرست برداشتن کرده. در این شاپ آرولویت اصلا این فهرست و به همین عنوان که کتاب مستقلی اشار شاپ کنند از فرامون کتاب مستقلی هست همون مرموهای ربانیی که تیکه شده در هر جلده و ساله اون تیکه که مناسبه اونج دادم فهرست نیست اول کتاب و سال هم چاپ شده اون یک کتاب مستقر نیست که خود صاحب و سال و خیلی که از فوائدش اینه اینجا رباید نوشته، حضرت حدیثی که حساب بکنیم هشت راست خودش گفته هفتا نمیسته خود ایشان از فقیل گفته هفتا اما الان که ما نگاه بکنیم هشت راست خب طبیعتاً یا باز دیگه صاحب سال اشتباه کرده خود ایشان یا ایشون یه حدیث رو دو تا حساب کرده در حقیقت سال, سال یکی حساب کرده خرافه و اینم هم خودش نکته است. نصافا ما یه مرزاقیم باید که وسائل میخونیم نکات وسائل هم بیگه بحث فقرین اینم هم یه نکته است که ما یک حدیث رو دو تا حساب بکنیم یه یکی من جاهای که سال و سالی به عقص کرده یک حدیث رو که من دارم چهارت حدیث رو یکی ح بس اینجا آمده حالا عرض میکنم کنم که کجاست احتمالا اونجایی کتاب سایه یکی رو به اصطلاح جا... دو سالی یکی اتاک کرد این... این نقطه این در این شاپ مرموعی لبانی هست و این شاپ آیون آرول بید نیست اصلا که ایشون حدیث اول رو, رو بردن محمد آم نیعبود انا علیه بن ابراهیم انا عبید این شیخ ابن عساکر در کوفه قال ده له ایبن شفتی حالا این نوشتن ساحر بوده نوشتن دیگه ظاهرا از این ساحر بود که اسمش هم واضحه نیست بعضی اینه که ساحر نیست میگه موه او غیره ولی موه شهرها یا جلدی اینم ظاهرا نمید اسم ایشون به اسم آدمانی میخوره چند جور نوشته شده سیفی نوشته شده شفتی نوشته شده شربین نوشته شده, شده. شده. ما نمیدونیم اسم فرعی شده شده در اسم خود پیساش واضحه اون دومیش خیلی نسخ مختلفه و سقمی هست سف... سفمی هست سیدی هست شفقی هست شفقی هست, شفقی هست. خیلی عجبه دوید و کان ساهر از دخل ایسا شفقی علا عبی عبدالله و کان ساهر یعنی ناس و یعنی خود علا داریکل یه نقطه دیگری راجع به وسائل من ارز کردم راجع به تنظیم روایاتی یک باقی همی که از مسائلی که اینشالله اگر به همشت به جمعه حالی سریزی بهش اطلاق بیدا شده. سال و سال اینه مبنی سال و سال بگم مبنی سال و ساله که در هر باق قلعصه بیاره قلعصه بیاره قلعصه اول بیاره این دو توضیح تسلیح کرده خود ایشان تویه یا مقردن تو خاتمه نمشه که در هر باب از صحبه از صحبه بردن استظهار ما نیست شادمانی. ما نیست اما در ها مثل مثلا این کار نکرده قرفاتی در ها به در که اگر مقایسته بکنیم در اواله که از شاگردهای شاگرد دورفی یا مروم مجلسی مروم های بحرانی ایشون برداشته به هسته به رسول الله و عیمه اول رسول الله بعد عیمه تا بعدم مثلا اگر چیزی از روایات هست یه ترتیب ایشون داره مرحوم بهرانی. آی بلوچیزی در اون جدای اولیش بعدیش می‌کنیم که به هم کوتیم دستی که این آی این رویش کنه. توجه نداشته. آی بلوچیزی موثره بود بهترین که دست بندی بکنیم. مثلا اگه در یک باب چهار تایفه روایت داریم، اول مثلا تایفه اول مثلاً یه تایفه میگیم مثلاً مثلاً مثلاً هراله یه تایفه میگه هراله 86 ساله واسه اینکه حداقلی خورده پوشدارند 93 ساله واسه اینکه حداقلی یا مثلا بلوغ دخترها 4 ساله میگم مثلا 9 سال، 10 سال، یک دوره یک دوره دیگه 13 ساله یک دوره دیگه 15 ساله یک دوره اینا دیگه همه رو به حسب دسته‌بندی تایفی بیانیم اینا راهای مختلفی هست که اصحاب ما انجام دادن برای بیان اینکه که روایات یک با رو چه جور می‌خوام اگه وقتی هست کمی توضیحات بیشتر بدم عرض می‌کنم. من فعلاً برنامه اما من خود من عرض می‌کنم. امروز نفهمیدم که چرا سال وسائل اینو بهانۀ اثر احادیث باب آورده. چون که شیخی من از احبابند کوفین که مجهوله. بله مگر حالا مگر من نمی‌گم بله بله المان دلا همین‌جوری در قوربول اسناد این‌جوری آورده. حیثمه نعبی مسروغ نهدی انا عبی انا ایسان سختی اون سند برگل اصنات تا خود ایسا خوبه با روایات با اون سند بعد نصد وقیه که بهتر بر. اون چیزی بهتر برده برده باید که زید ایشون برانه سند اونجا به ایسان سختی منتقی میشه که ایشان در تشدید روشنی نداره. شورای رئیسات راوی از روغواس باشه. بنیاری گفتن دیگه شو. گفتن رضا مشکوشه. در کتاب کافی در انشکه نسا ند کوبین قال دخل عیسی. اما در کتاب قرب و اسناد و صدوق هر دو صدوق هم همین داره در که ان عیسی این طور داره این سبن شفقی وکان ساهر این طور داره یه تیه ناسه یه خود عرض داره قال اینجا این طور داره ایسا قال بله قال, قال هجشت و فلقی صاحب عبدالله بمنا اونی بیدر کتاب قربل بسناد و فقیق هر دو شد آمده کلام خود عیسی. اما یکی کتاب کافی آموده کلام شیخ من اصحاق نرکوفی روشن شد شاید ندارم از احالی زباب این تشریف داده خب اینم راجع به ایسا به که بفتیم رو این روایت در دو مصدر یعنی در کتاب کافی چون تنگیم هم از کافی گرفته کار خاصی نکرده اما در کتاب به اصطلاح قربال اسناد از خود عیسی نقل کرده. یعنی عیسی علیه الحجج که پدر خالو علی عبدالله به منا این متن مختصری با کتاب کافی فرض می‌کنه. چون نشد فرض کرد. اما تغیری داره که رو یعنی عیسی بن و همون متن قربال اسناد رو آورده. تغیری متن قربال اسناد، نه متن کلیمی رو. که واضح کاری از قبول اسنادی است نه از کلی. فقاهه گفت که که فداگ انرژی و کل تا عليه علیه و کانه معاشی و قد حجش من و من الله علیه ال و بر احکام الله تعالا از در جلب هلی فی شین که نخریدن فقاهه ابو عبدالله هر لواط لا الله آباد. هل تعبه تعبه حل باز بکنم و ارث خب این رواستی به قول خود صحابه سوال اتحه واسه بابه ایشون رو ابرده شده که گفته بابه با حکم الحل در عنوان باب اگر دکت بکنید نکن و جواز الحل نقطه چی اینه که نقطه اینه که محروم صحابه سوال نگلد ظاهر شده شده خیال میکنه حل بکن و عقل نکن یعنی عرض رو با همون سهر انجام نده حل رو با سهر انجام بده این شما ها بگه روایات سهر مطلقه اصلا انسان استعمال سهر نکنه حتی حل پس این روایات میگه این چهار شو کنید این عبولو توضیح اون خوب میسی ار عنوان با گفت خسته بعض علمان اینا به حل بغیر سه روشن شد چیم کنید یه یعنی که امام فرمود حل بکن، باز بکن یعنی با آیات و قرآن، با ادعیه، با دعا با این جور چیزا نه با خود سه بالله سه مستحکم، حرامه. چه حل باشه، چه عرق باشه، صد نوت. ها؟ تو روایت نه، که قسم قرآن و ذکر و تعویذ و همه حسنان این هر کدوم خوبیه. درست گفتم؟ وار ظاهرش ولی ظاهرش این میگه این حسابات تو دقتش 60 ساله در عنوان باب چی گفت با با حکم ولتن این نکته حکم الهی خودش رو داد حکم الهی روش نشو چرا خود ثابته رو حکم هر نگم بجواز الهر ایشون ما پس اشکال صاحب مسائل در چه قسمتیه در این قسمت که این روایت گفته حل جایزه نمیشه بگیم یعنیگن حل با سر جایزه ظاهرش این طور ظاهرش اینه ظاهرش اینه که تو که سر بردی تو بعد از این کسی رو نبن اما کسی رو تو با این سهر بازش بکن ظاهرش اینه خب از اون ایشون داره که خب روایات افلاق سه من داره که جایه می توفه اون روایات اقتصاد بطوره که حل هم نباشه لذا ایشون میگه که قصد های بعض علمان ها بلحل به غیر سه که القرآن و ذکر و تعویز و نهبه ها برس خودی ایشون به حبه حسن این محبه حسن های اقتلال صاحب و سایل خوبیه اضلاح تشریحه به جواز به حل به سه ظاهرش هست اما تفصیل نداره. بره. خب بجای خب همین روشن نه خب چقدر دقیق صاحب سوال دقیق صاحب سال روشن شد. سوالات به خاطر این احتمال بین در عنوان باب من چون سابقا چند سال سال‌ها برساوا درس بود. من درس خادم چون واقعا درس خادم ساواسه. خیلی کتابه بابرکتیه. اصلا مرد بزرگواری بوده. پس دوران پیشون، چه بید اجرایی داشت، فاز و بوده، یعنی امور در اختیار ایشان بوده در آن سفر. ترجمه منصور که بازرگزارستون کتابی نوشته، این همه آثار علمی ایجاد کرده، 20 سال طول کشیده. این کتاب نوشته، بعد از این مراجعه دوم باز به کل کتاب نوشته، مراجعه سوم داشته که در اون مراجعه سوم حواشی نمیشه، باز خود ایشان در اون سوم سومش تعلیقاتی داره که دا یه چاپ آلوده چاپ شده تو کتاب آی با نیامده. یکی از های بسیار مهمه چاپ آلوده، تعلیقات خود صاحب وسائله که برای اولین بار در این کتاب چاپ شده و بعضیش خیلی نافعه. این تعلیقات ایشان فوق‌العاده ارزش داره. من دیگه وارد بحث میشم، احتیاج به جایی داره. در به هر حال این خیلی عجيبه دقت صاحب وسائله، خداوند ما صلوات و زبان الله تعالی علیه چقدر ایشان با ذرافر و با دقت تو کلمه حل کراسیده با این که روایت است و با که به تعبیر خود از سخت روایت با دفت چون یک احتمال هست حل با صحب باشه یک احتمال هست حل با قرآن باشه <تصفح> نه چرا نه با میخواد دیگه چرا چون ممکن است یک فمیه نه؟ حلم باسر اونا حل با نمیشه. با نه ایشون, ایشون میگن یه حل ایشون که حل مطلقا جایزه یه حل با قرآن باسر نه نه حل مطلقا نه چرا دیگه نه ببین, ببین؟ بابا ببین تحریم تعلم نه حلم اگر باشه ولی حل به سه چون سر به حساس فره و عجری و استعمالی همش به سه در میاد. اگر حلم باشه حل به سه ایشون بخواد بگی نه ظاهر باید حل به سر هست چون کسی نشده با غنی بقیه حال حل به قرآن نباشه. در هر حال چون یعنی زرافت کار سال وسائل نمیخواد تحمیل رعیش به شما بکنه چرا راجی به حد خیلی شیعی نیست یکم بکنیم راجی به غیر حل واضحه اما راجی به هر واضح نیست سند مرحوم همیری قدسه الله نفسه در قابل اصنات ارز کردم ما دو معروف داریم که پدر و یکی پسر پدر اسمه عبدالله هی. عبدالله, عبدالله جعفر همیری بسیار مرد بزرگواری فوق العاده. و پسرم محمد نامد الله محمد پسر ایشان ایشان از بزردانه اون وقت این کتاب قربل اصناد مال پدر دوست شد مال عبدالله هم جعبر پدر یه توقیات همگیری هم داریم که بهتنی توقیات وقیت الله همین توقیات همگیری است اون مال پسره هر داشت همگیری نیست توقیات همگیری در صالح در آیم سرات الله سرامواله لیکن اون توقیات مال پسره که محمد باشه قربل اسطناد مال پدره که عبدالله باشه بلا هرزور هنگری میسه سن قربل اسطناد الهنگری یا توقیات الهنگری این دوستان رو با هم دیگه فرده داری البته مرحوم کلینی هم شاگرد پسره در کتاب کلینی زیاد داری محمد عبدالله محمد عبدالله مرادش همین پسره محمد عبدالله هنگری الله. پدر و پسر حافظ از بزرگان و اجلای از هوه پس زروا هندی یعنی این است که که عبد الله باشه فی قرب الاسناد ان الهی سبن نحوی مسعود نحوی اما مسعود اسم کنیه است اسمش عبد الله است الهی سبن عبد الله بعد از مستخم هندی چاپ شده قطعاً غلطه ایشون نحوی هندیت نیست ایشون انا ابیه که ابو مسعود باشه در کتاب کشی ی من همین اقایتی میگه بحث به جایی بشنید میخواب با انجام بدم. قال همده استاد کشیه لعبی مسوخ ابن نقال لقو الهیسن حیسن نرم مسوخ سمع تا اصحابی یعنی همده غیر ما میگفتند. یه و کرونه همه به خیل کلاه همه پازران پدر مردمان پازری هستن و خیل خیل خودش توصیره پس این حدیث به سمد همیری یک کمکی بهتر حیف که داره که همه ایساب نسختی منتعی به ایسا شده در صدوق هم داره که و روی این ایساب نسختی یعنی در مشکه ترین به ایسا نداره نمیدونیم چرا آلا چی شده چرا نمیدونیم حدیث شماره دو محمد ابن علی ابن حسین این مرموم صدوقه اول حدیث از کلی این البته عرض کردم بعضی ها میگم در ترسیب اول مصدر خمیمتر رو بیانیم اگر بنابینی باشه اگر بنابینی باشه اول باید گربولتسنادی میابرد چون این گربولتسناد هم دست کلیمیه اگر بینی باشه اول باید محنون گربولتسنادی میابرد در کلیمی در صد و برشی خصوصی بعضی ها محتمال حدیثه که مقدر بیاریم با سلسله تاریخی خودشی یاری اما ثابت سازی کنه حدیثی که ما دو محمد و محمد بن حسین مرحوم صلو به اسناد عن یعنی استاکونی سرش رو تکونی همین سر معروفه برد نیست البته اگر آیان کتاب استاد رو دیده باشن مثل فقه حاشیه مشخص ضعیفون به نوقلی این ضعیفون به نوقلی مبنای سابق رأی قویی بوده، بنای برگشتن برقرار منفردtypescript شده. این متصوره که قاضی که تشاپ شده، اجازه خودش در داخلش تنارض داره، در حاشیه آورده، یک مال بر اون مقرر بشه. البته مبنا بود مصالحه که نختلی دلیل به برداشته شدن به صلاحش. اج جعفر محمد بن عبید قاضی رسول الله. من چند بار توضیحش داده، تکرار نکنید. کتاب سکونی داره یک تمل واحدیه جعبال محمد ان حبیه ان آقایی ان علیه رسول الله. اما الان بی این صورت زده نمیشه همه زیاد داره صاحب المسلمین یقتن و صاحب کفار لا یقتن بیگه رسولله للملا یقتن صاحب کفار قال لهم و شرک اعزمون و سهر لهم و سهر و شرک مدرونان مرموم هم داریم تیران من روناتوز به کبوتر هم هم پروازه کبوتر با کبوتر باز با باز به قلعه خب این از نم کتاب است که ما زیاد صحبتیم یا حال صحبتیش هم نداریم و خلاصه چیم که ما قبول هستن قول سکونی محل اشاره. این روایت رو معلوم شیخ صدود در کتاب علم از محمد ابن حسن ان سفار. از کدام یه کتاب شیف سادو آلبان میگری مهندیدن حسن مهندیدن حسن تو هم پیش اهر حسن میاد ولی در کتاب سختی از دخال مزیع حسن نگاه بکنی حدیث لکی بوده حدس نابور حسن قاله حدس نابور حسن قاله حدس نابور حسن آنال حسن آنال حسن آنال حسن حسن خوب حدیث یه سفیات از باها تو ماده هه و سید و نون حسنه اونجا دره شد و گفته مراد حسنه اول که دوبار و بعد محمد ابن حسن اول مرحوم ابن البریده محمد ابن حسن دوم صفاه ان محمد ابن حسن صفا ان احمد ابن عبدالله برقی قصد سا ماسه ماسه ما برقی پسر. ان احمد ابن عبدالله ان نوفری از شد سابقا کتاب سکوني نسخه مشهورش همینه نسخه مفلی وخت نوفلی خودش اهل کوفه بوده ظاهرن عواخر به قوم آمده نخور مزر ری آمد نزی احتمالا سکن ری فی آخر ایامن احتمالا مرمنبرقی ون من فتم برقی پسر شاهد نداره به کوفه رفته باشه هس بعدش هواد هنوز وصول پیدا نکردم احتمالا برق پسر به ری رفته و شون کتاب سکونی رو نقل کرد راجع به کتاب سکونی ولو صحبت کنیم وقت قال این آده کجاست ها این چون حدیث شماره دور وقتی محمد بن علیه حسین به سکونی از کتاب فقیه برداره برمبخل علر از محمد بن حسن قال آخر استرخواد حدیث سپر شمایه درسته قال و رو بیرن توبت از صاحب یهول بلا لا, لا, لا, لا این زیل مال علی داماد نشه باشه. می‌بینی وسایلی داره؟ این قال زیل مال, نشه. داره. قال مال یعنی حدیث دوم رو در خریم تو علی دامادی. این زیل تو روشن شکته این زید تو فقیه نیست این زید تو علده قال و رو بیرن توبت از صاحب هم. هم. این زاره همه حدیث بالاست من احتمال میدم یاد اگه رو مارد برسرد نفس هم میبین بشو این چون در زید حدیث علد بوده این رو یک حدیث قرار داده پس منشه اختلاق مرموهای ربانی و خود معلف اصلی هم بایشن شد این چی چاپ چیکار کرده شماره سه زده ها. این رو شماره سه زده درد کردیم از اینکه ایشون در مقدمه نوشته هستا ظاهراً این شماره سه و با دو یکی حساب کرده ظاهرن خود هم اگر شاپ من خدمت باشه در این بله با بیسونه این سطحیه که هست چون این مقدم که در اول سطح زور کد سطحیه هشت بارو تحریف تعلوم سه پس به نظر من میادید زودیات خداهایم به نظر من این آله و رویه رو با حدیث شماله دوزه به الهزار شده مجموعا هفت سار اما اگه جدا میشه خب حدیث شماره اما حد اینه که جدا شده میشوند این طوبت ساهمیه و در روایت آمده تو راست سکونی نیم آمده اگه زیر راست سکونی بود چی تو زیر حدیث شماره چهار در قیون اخبار رضا البته قیون اخبار رضا روایتی است که توش حضر رضا باشه ایشون از این تفسیر محروف امام عسکری نهره کرده این سنده اینجاست سندی است که به تفسیر امام عسکری برمیگرده و محمد بن القاسم استاد ایشان شیخ ایشان که همین تفسیر رو نهره کرده این دو تر کنیم بود <تبار> محمد ابن علی اسمونم محنوز نفهم محمد ابن علی یا محمد ابن قاسم یا محمد ابن قاسم چیه اصلا المفسر الخطيب، علی استرابادی رو رحمه بری مثلا یه معلوماتی هم داشته بود و خودشون تفسیر بکنید حالا آیا قاله و عجیب اینه که صاحبت هایی صاحب اینجا از تفسیر ما مرکه استخدار شکل تفسیر امام عسکری ظاهرش نیست که از خود امام عسکریه دیگه امام عسکریه به ما به اصطلاح ابو محمد حسن درسین امام عمد چون به امام عمدی هم باید عسکری روزه لیکن اگر از امام عسکری باشی تو در اون اخبار رضا یک یه قسمت اینجوریه تو اون اخبار این اخبار رضا اینطوریه هم یوسف ابن محمد نزیاد و علیه ابن محمد نزیاد دوندن انا ابي ما علي حسن بن ان ابي علي محمد ان ابي محمد الغاري ان ابي ابي بن چون اين حديث تصريحي از مصدر اخبار بوده فرمودند ان ابي موسا جابر بن ابي جابرن ابا رسول الله ان ابا فی حدیث قال و محون زلال الملکین به باب لحاروت اماروت قال که ها به بعد نوقع تسویت سحرس و المرمزهون که مرمزه هم که تنبیم از و باست الله ملکین را به نبی داره زمان ما شروع کرده توضیح هایی دیده که مثلا هنده ای این که زمان که ملک احلی نحرقا نیست یه توضیح راجع به این مطلب و این قصه چطوری بوده؟ قصه اینا ارز کردم راجع به کتاب تفسیر امامه ارز کردیم خب به زیاد نوشتن ده کتاب مستقلت نوشتن به سایه مستقلت مفرده به ده قبول کردن خاطر شیخ صدوق این محمد ابن خاصه مفرد و اون یوسف ابن محمد و علی ابن محمد داره که لحی ازتون با از همان علم من حاض عین کنم میگن ه که بیا را داشتن و لذا این دو نفر هم سر در ماامقابلین می فر اما این تفسیر حالا غیر از مشکلات فراقه داره که داره یه مشکل هم اینه تو بعضی از دوه و همه ادهای ما اکاری تو بررزش داره اون دو نفر اند دستکاری کدام دو نفر محمد و حلی ابن محمد ابن سیار این دو نفر عدل است که اینجا همون به ریه ما داره بر جام نزاره خب از کم توضیح سابقا توضیح شرح کردم بحثم شده که این دو نفر توصیح شدن این دو نفر شدن سقر سقر ند ما معالیم یه سقر به خاطر کلماتی دیم. ما معالیم یه سقر نیستن به خاطر اینکه ناقل این کواب خودشون ها نمیتونه قبول بکنیم بله آخر صحبته که که ای ک اونی که ذهن خود من میاد که چند بار عارض شدن این دو نفر اصلا موهومند بحث به صراحت بحث لغویه وجود خارجی ندارن این آیه مفسر حساباری انشاء الله هر چی بوده الله اعنه و او خلقت هر یک شخص یک خاصتی داشته ریوالاتو چهل می‌کرده که از خصات وجود اسمارم چهل می‌کره ارذل جن هم این محمد بن یونسو بن محمد معقوله ازازگاهی هم هن اقوه به اینماس داره گاهی نداره چه باشه چه نباشه چه مهم هم وجود خواهش باش باشه نباشه خیلی در اینجایت فرق میکنه. در هیچ جایی در هیچ مستری در هیچ کتابی در هیچ حدیثی یا نام از اینها وجود نداره و اصولا به نظر من بیا حالا اگر منبری بوده خطی بوده و بوده یه معلومات خیلی محدودی داشته خیلی خیلی معلومات ضعیف خوب ضعیف مثلا اینکه 7 سال رفت اون سامرا رو پدر ما عسکری تشکیل گرفتن خود کل امامت امام عسکری 5 سال و 6 ماه بوده 8 سال نیست یعنی این مقدار از اول کتاب میان تو کتاب لاحاله زیاد داره برادر من یه چیزی که از اون اولش معلومه که خیلی پا در حواس عادت اگه کسی میخواد بره را اون وقت باید مثلا خدمت امام هادی اشنا امام هادی فرندیه فرزندان مثلا حسن مثلا درس بخونن نجا در هفت سال خدمت امام رسلن خدمت امام به قصه وهمی های شمال مازندان شمال ایران بوده سال دیستو پنجاه ها در اونجا به قدرت میرسن اولین امام زیدی های که قصولا خلافت به حکومت رو دست میگیره در ایران درها هرها زیدی ها یمن رفتن این ابو محمد داعی حسن ابن زید در سال دیستو اونجا خب می‌مونی چون دیوان باشی نبودش هم با دیوان‌چی‌ها همونطور خیلی بود. ایشون تصویر این مثلا کتاب انجیل درس میشه. میگه بعد از اینکه ابو محمد داری آمد در سلانسام حکومت، این دو نفر، یعنی محمد و فلان یا بخششون یا پدرشون اینا از درصوف فرار کردنشون در فشار بودند سامر را خدمت از از در فرند. هفت سال که در دست‌کری این کتاب رو این تفاصیل رو تفصیل رو نوش کتاب هم مثل زریفیه دوسته تا عبارتش برمید بریش غالبا زریفه یعنی خیلی عبارتش عدبیتش خیلی عدبیت گفت که لحنه و لکنه و اجنه درش واضح کامل و این دوسته منم و اما من کانون فوقا ساعن نفسی حافظا لدیم مخالفا علا حوا در خیلی طوریه مورسی عمله امر مولاه فرد العوامنی و دیدم همین این تو همین کتابی دیگه همین عبارت من تو تفسیر ما من از کلی بارد شده حالا یه حال شما اینه که اصولا هم سندش جلیست هم اصل قصه جلیست معلوماتی داشته معلومات مختصری از همین کتابایی که هست هستمیه هیچ که رفت مسافرندی شد بلانی چیزه بسایی شکل پرد هر یک مناظره شیالی بین دو نفر شیالی با خدمت امام عسکری که معلومه که اطلاعاتش در حیات امام عسکری ضعیف بوده و کتاب پر از خطاهای تاریخی است پر این تو یکی و دو تا و ستا. پر از خطاهای تاریخی است شیعه که ابوات اموی پیغمبر رفت مثلا از مکه هجرت خدمت شیعه که مثلا فرض مسجد پیغمبر ساخته نشه که ما حسن حضرت حسن نمیشتی که پیغمبر دوشن مسئلی ساختن حضر زران شست بود حسن آسان زیر برای از اون ها، عباس از اون طرف آمد حالا عباس سال پنج آمده بره به مدینه ساختن مسجد همون سال اول بوده امام حسن سال دوم به دنیا آمده محسل. امام حسن سال قضایی ها با هم کردی که اصلا آدم واقعا بختش میکنه این طور قضایی رو به هم میریده نه کرده. یک ای چیزی شنیدی ای که از صحابه بوده ای وقت موردی و چیزی ماند زمان حیاتش به زمان مرجعی بیاید کار آسیب ورشت نکیم که تو تفسیر ما در کار آسیب بودن خیلی مثل احترام به بعضی نادرست کار ما یک چیز ما نکیم خیلی چیزی ورشت نا کیم ما صادق نمیگیم اونی که ما الان فهمیدیم که این مربوم کرده پس... اسمشون نفهمیدیم چون جاهای مربوم شده سلام گرده سلام محمد نالیل مفصل در اینجا میگه محمد بن قاسم میفته میگه محمد علی محمد بن قاسم نزاد بیاد در بدر به هر حال خیلی وضع عجیب و غریبی این شخص داره خیلی انصافا خیلی رضا چون یک شوغان داره که خوندن انبیاش <تصفيق> شوگاه شو به خریج باشه نباشه دیگه نمیخونه خداوندا نزاد از چند شرط با اینا بله حالا نقلش در اون کتاب که خودش داره اما از عجیبه که تو صحیف یک تکیه حدیثی در فقیه آورده. نک چه درش. اون خیلی عجیبش اینه. حدیثش نمی‌شه. اون دیگه باصل. درباب درباب حدیث نمیگه. میگه از امام باسر از هم دو نفر. یوسف بن محمد علی بن در باب تلبیه، در باب هر چی یک دونه حدیثیش آورده. از روایات دیگه‌ای که بازیشون مورده از طمیمت بن عبدالله قریشی از مشایخش که احتمالاً باشه. برکت همون شد نهی هری دوام قلم دو خونه عبی که اونم از اش از اون شد نباشه انا احمد ابن هریه انصاری اینم زارع صلیب استادیبش کردن انا هریه ابن جه در این نسخه مرحوم آیه صلوات هریه ابن جه نه اما تو این اخباره هریه ابو محمد ابن جه نه یه امده خود دونم ولی فدیم کی انا بزاره علی سلام یه هریه اون قالب ام مغاروز و مغاروز و ملکه بخی این علی ابن جه حالا اینجا این زیلش اینجا نداره در کس مراجعه کنش یه حدیث دیگری از همین علی ابن محمد ابن جه من از ارده خود صدوب اینطور میگه حالا واقعا عجیب از صدوب خود بود حالا. مثلا آثار حفظ کردهشون ایشون که حاضر حدیث غریب همین صده همین علی ابن جه زیل این نه این من جه منطریق علی ابن محمد ابن جه که اینجا همون شده معنصبی و بغضی و عدایتی لحلقه علیه مستقی که اینکه از نواسو هم بوده خیلی و بغضی و عدایتی و در مورود زرمی خود شاعر بوده شاعر زهلقه ای ترسند اون علیه ابن جهن حالا میده داره. مدت مشکله اینکه مشکلی, مشکلی تو اون که شاعر وخیل ناصبیه علیه ابن جهن اینه که اینجا آمده علیه محمده محمد خود راه استناده هم علی ابن جنه ابن بدر ابن محمد بن مشعود ساجی که شاعر زمان متوکل به اصطلاح متفکر زو وبسا ابو زگاره علی ابن جنه اصلا میگفته کان یل انا ابا میگم من پدرم لعنت میگم چرا چرا اسم من علی بشه چرا اسم من علی بشه نمیشین در تاریخ که کسی همینه همین حدیث می علی ابن جنه کان یل انا ابا انا عثمانه علیه و اجيب صدق علی عرفات نام البته باز احتمالاً صدور اشتباه کرده اون علی بن جریه این علی بن محمد بن جریه احتمالاً باز خطا اندون مثل حسن حسین شده باشه این باز اون نباشه